بحثمون بر کلمات قایات غیر رو خدمت رو کرد. بعد کلمات دیگری هم هست مانند غیر چهار صورت دارن در مشهور یک صورتشون مقلی و سه صورتشون مورده و یادتون باشه آقای مولا جلال علمان کرد که اگر هر چهار صورت رو به طبع آقای افتاش ما بگیم مقربه است قبلون احسن حالا کار نده قبلون که غیرن بعدو حسبو ابل و دونه و الجهاتو ایزن و عبدو قبلون که غیرون بعدون خب. قبلون که غیرن بعد و حسب و اول و دون و الجهات و عیزن و عدون قبلون مبتدار که غیرن یا که غیرون قبل. قبل مانند غیر است بعد و حسب و اول و دون و جهات و و الو. همه ای اینها ها عطب به جای قبل است. همه ای اینها ها عطب به جای قبل هستن یعنی او که غیرن مثل اینکه که گفتیم زیدون، قائمون و امرون و بکرون و خالدون همه عطب شده به جای فقط در بعضیشون همه چی شده؟ که در ضرورتشه جایز قبل که غیر بعد و حسب و و دون و جهات هست چند تا کلمه دیگه یکی قبل بعد حسب سه اول چهار دون پنج جهات ششبانه شش الو، این هفت کلمه هم میگه مانند غیر. هست بنویسید این کلمات را از قبل به بعد. این کلمات و ظروف را البته جایی را از حسب حسب زرد این کلمات و ظروف را قایات می نامند چی می نامند؟ قایات می نامند زیرا قایت کلام و آخر اون چیزی است که این کلمات به آن اضافه می شود چیزی که این کلمات به اون اضافه میشه پس قایت مزافون علیه اینه پس چرا به اینا میگن قایا و هنگامی که مزافون علیه خاص میشه خود اینها جای مضافونه لیف رو هم برمی کنن بهشون میگن چی؟ قایات پس اگر میگن قبل بعد غایات هست از اسمای غایات یعنی غایت کلام مضافونه لیف بوده وقتی مضافونه لای هست میشه خود اینها میشن چی؟ قایاتی به این دلیل بهشون بردن بیایید کنید قبلون که غیر فی جمیع ما تقدم در جمعی آنچه که گذشن چهار صورت یک صورت مزافنه لعی مذکور سه صورت محضور یکی از سه صورت محضور اگر نفزن در نیت نباشد معنی باشد مبنی دو صورت دیگرش نسیگن من و نبیگن من بیاش مقرب است همگاه به صورت مذکور فی جمعی ما تقدمه فیوبنا الاز زم فمای فمایوزا خیلق مبنی میشه برزم هنگامی که مضافن اله حضب بشه و نوی معناه فقط و معناش فقط مورد نیت باشه نهو لله الامرو من قبلو و من فهم لله خبر مقدم الامرو مبتداء مؤخر حسرم داره یعنی امرو اونم کل امر به دست خداست. در درید قدرت خداست. هست لله هل عمرو. من قبل و من قبل و من قبل و متعلق از به اون چیزی که لله خوش می خواهد. و من بعد هم اتفاید شاید. اینجا مزافون لای که قلبه هستش که اگر به الهیر رو کنید خود وچه خواهید شد موره روم القلبه با غین لفظش در نیت نیست حالا لفظش میخواد قلبه باشه مشافتات قحه باشه میخواد زفر باشه قرقی نمی کنه معناش مورد نظره که باید پیروسی باشه و برتری دیاره من قبل قلبته و من بعد قلبته معنا در نیت هست لفظ در نیت نبوده مقلی بر زن فراج شده. شده قایات مضافنه که اصطوره کنه کلمه قایت شده آنجای مضافنه نایی بود حالا اگه مضافنه بود می چی؟ من قبل قلبت و من بعد دل قلبت مورد شد اگر مضافنه بود هم لفظش در نیت هم معنا می شد من قبل و من بعد دل که قراعتم دارد اگر نه لفظ نه معنایی که دوم در نیت نبود نسی یعنی منسی یا شدیم چی؟ من, شدی من قبل و من بعد که اون هم قراغت بارن دون ما ازالم یخزب. یعنی غیر ما ازالم یخزب. غیر از اون که حصف نشه یعنی مضافن لای سر جاش باشه نهجه تو قبله لحصف جه تو فیل و فاقی قبله متعلق به جه اضافه شده به هر ظرف از موضوع اگر به این دوتا نگاه کنی ببینید که کلمه قبل یه جا ظرف استفاده شده قبله یه جا مجروره به من این ظرف نیمه متصدقه یک ظرفه یعنی میتونه تا حدی مجروره به حرف جر هم اونم حرف جرح من هم قبل هم. قبل. او خوزف ولم یون و اصلا یا موقعی که حذف شده باشه ولم یون و اصلا جوش میگفتیم چی نصیم؟ منزیا نه و فسا قلیه شراب و و کنتو نه لبسش هست نه معنی نکره شده این یومن سنت و یومن که بود شد نه کنم اکاد و اغس و بلما ال الهمینی حالا من نمیشته الهمین برسته چون قابل و ساق یعنی حالا، لانه سهله شد ساقلی متعلق به صحابت از شراب و سایر صحابت گبارا شد برای من شراب و کنتو قبلن و کنتو قبلن این باب اگه باب آتفه باشه کنتو هر فوجه صحابت مشکلی نداره اگر با با با باشد باید یه قد هم برای فعل نازی که حال تقدیر گرفت و قد کنتو قد کنتو قبلا کنتو تا اسمش اکادو از افعال مقاربه اغسو فعل زمیر اعنه فاعلش اون اکادو فعل زمیر اعنه اسمش این جمله اغسو خبر افعال احسان هم که بگیدن هم بیاد در قرآن همه قاده ها بگیدن هست قبلن متعلقه به اغسطس قصه یا قصه, قصه یعنی گلوگیر شد شرقه یشرف این چیزی پرید به گلوش و گلوگیر شد قبلن اکاد و اغسطس به ما متعلق به اغسطس حال همین صفت ما امین از لغت انسداد دو تا معنی داره هم به معنای آرز هم به معنای بارد هم به معنای سرد هم به معنای گرد اینجا به معنای سرد به معنی چه میگه قساغلیش شرابو شراب برای من دوباره شد و بودم من قبلا یا به حال بودم من قبلا که نزدیک بود گلودیر بشن به آب سرد آب سردم گلو پایین نمی رفت آب خنندم از گلون پایین نمی رفت قبلا ولی الان شراب برای من جمله اعاده و افسکو جمله قبر خبر است شاهد سر کدومه قبلا که مضاف ده لفظ و معنوش در دیگر نیست یعنی سابقا قدیما معنوش قبل خاصی او لفظه الافزه وقتی لفظش در نیت باشه خب قطعاً معناش هم در نیتو جمله لفظی بدون معنا میشه چی لفظاً نه معنا و اصلا بخشی از اش او نوبی لفظه ما معنا نحو و من قبل کسر و من قبل نادا کل مولا قرابتن کل مولا قرابتن فما اتفت یومن علیه لعوا و من قبل یعنی و من قبل حاز الوقت من قبل مدلق است به نادا مزاخره نیش لبس و معناش در نیت نیزش من قبله اموال مضافون علی هست من قبل هازل وقت نادا کل مولا من قبل مطلق به نادا نادا فیر کل مولا مضاف مضافه فائل نادا قرابتن مفعول نادا میگه قبل از این وقت فریاد میکشید صدا میکرد هر مولایی هر بهیسی هر سید قومی قیشان خودشون فما عطفت یومن علیه لعوان فما فافای عاطفه ما عطفت اما ما عطفت لعواطف و یومن علیه اما عاطفه ها و احساسات در روزی بر او عطفت نکرد هر سیدی هر سروری قبل از این قرابت و خیش رو صدا میکرد اما هیچ کدوم یک مردم به سوی ها تمایل فما اتفت العواطف و فایل ال اتفت یا من زرد متعلقه به اتفت علی متعلقه به اتفت فما اتفت العواطف عل و علیه یا اومن اما عواطف بر او هیچ روزی و دوست شاهد قبل قبله هستش که مکسور شده و انگار مضافنه لک هست زیرا چیزی که هم در نیت هم معناش این بار الان وجود داره که بهش میگن چی نبیین من دیگه. میگه حالا نظر ملا جلال خودش میگه بل احسن و فیها عیزن و فی ما بعدها مختار حول اخفشو منل اعراب مطلقا میگه ما نظر رو میگیم و احسن بل احسن و اون که نیکوتر است فیها در این کلمه قبله ایزن مانند کلمه غیر که گفتیم وفی ما بعدها و آنچه که بعد از کلمه قبل است مثل بعد و حسب و اول و دون و جهاد و ست و الو احسن چیه؟ احسن احسنو ما اختاره و را اون چیزیه که آقای اخوشون را اختیار کنم میدیم من بیان کنم من مای مختاره و را بیان کنم من اله ال اعراب مطلحا از این که بگیم مورد از مطلحا یعنی در حد چهار سو. بلو این که لفظش در نیت نباشه معناش باشه در هر چهار سوره مطلق. و مثلها عیزن بعدو مثلها میخوره به غیر و مثل غیر است عیزن یعنی مثل قبل کلمه بعد بعد پس نتیجه میشه طبنا و تو طب را علت تفسیر متقدر معرب میشه در سه صورت مبنی میشه در یک صورت اونم بر تفصیلی که گذشت کل آیت سابقته مثل آیه گذشته آیه سابق گفتن چند تا قراحت داره؟ سه قراحت قراحت مشهورش من قبل و من و دو مبنی قراحت شده معناه هست نفس نیست. دو قرآت دیگه نسی یا منسی یا و نبی یا منوی یا هم روایت شده از قرآت من قبل و من بعد من قبلن و من بعد کل آیت سابقه این خودش ستا قرآت سه صورت و نه و جعت و بعدل الاسره این هم چی؟ چون قبلا اشاره فقط به صورت زم مش کرده بود نظر به اون داره لذا میگه و قر و قرائت شده به دو شکل دیگه کل آیه سابقه در قرائت زم بعدل عصر در قرائت مضافه لای مذکور که مثال و قر ال الله هر من قبل و من بعد من قبل و من بعد درست یکی کسره بگذارید یکی تنگیر میشه چهار سو. این هم مال کلمه با. و کذا کذا یعنی کغی باز مثل غیر است کلمه حسبو کلمه حسبو بقل کلمه حسبو بنویسید گرچه این کلمه از ظروف نیست گرچه این کلمه از ظروف نیست ولی چون کسرت استعمال مانند غیر دارد و معرفه هم نمی شود به اضافه و معرفه هم نمی شود به اضافه بلکه به وسیله اضافه فقط تخصیص پیدا میکنه چون اضافهش اضافه نفسیه بلکه به وسیله اضافه فقط تخصیص پیدا میکنه گرچه اضافه بشه به سوی معرفه زیرا که در معنا به معنای کافنه زیرا در معنا به معنای چیه کافنه و اضافهش اضافه لفظیه و به خاطر همین که کسب تعریف نمی کنه می بینیم صفت واقع میشه برای نکره و حال واقع میشه برای معرفه حالا تو مثالایی که می‌زنید می پس اضافه اش اضافه لفظیه کسب تعریف نمیکنه صفت میشه برای نکره حال میشه برای معرفه فقط به خاطر اینکه که کسرت استعمال داره مثل قبل و بعد یعنی در چهار صورت و اضافه هم بشه کسب تعریف نمیکنه مثل غیر حملش کردیم به غیر و شکل دیگری یکی در کسرت استعمال ماننده و یکی هم به خاطر عدم ترگفش به بل اضافه بلکه فقط تخصیص بیرمی هم شده به غیر کذا حسب حسب سه تا استعمال داره حسب سه تا استعمال داره اینجا به شکل تقریبا مخلوط نوشته شده برمیسید حصم ملازم است وصفیت یا حالیت یا ابتداییت که افتداییت میگیم موجن منصوب و افتدا هم نشه. وصفیت و حالیت و چی؟ ابتدایی؟ مثلا اگر اینطور بگم هزار جلون آزا رجلن حس بكمن رجلن حس مكمن رجلن الان شده چی صفت کسب تعریفم یا بگم هاذا عبدالله الله عبدالله عبد الله حس بكمن رجلن حس رجلن حال واقع شده از آزا مختلف در اولی نعته در دوبونی چیه؟ حال یا اگر این طور بگم قبض تو اشرت دراه قبض تو اشرت دراه من. فحص بود فحص بود حالا <تصفيق> موضاف نشده بود ده لفظش در نیتی معناش در نیته شده مبنی بر زن حالا میتونستن به شک اضافه بود مثلا میگن فحص بی فحص بود ای ای فحص بی زال کله و حسبی زال کل هشون چی واقع شده؟ مقدار واقع شده خب، این سه شکل رو داره حالا تو همون شکل که دیدید من الان به شکل مضافش گفتم به شکل قطع از اضافه شم. گفتم ممکنی چهار صورت باشه هر کدوم از این حال میتونی چهار صورتش حالا نگاه کنید کذا حسبو پس به خاطر اینکه اضافه بشه معرفه نمیشه کسفت استعمال مانند غیرم داره چهار صورتی شبیه به غیر شده و اگر اضافه هم بشه معرفه نمیشه نه با قبضت و عشرتن بود، یه کدوم صورتشه صورتیه که مبتدا باشه حسب فاش پای زینته قوایه زینته مانند پای فقط مانند پای فقط بعضی اون قائلن پای فصیح است پای فصیح یعنی قبلش جمله ای در تقدیره یعنی قبض تو اش در آمد اضافه فهم زالک ایضا قبض تو ذالک بحث می یعنی یه فعل شرطی قبلش در تقدیره مثل فای فقط که انشالله تو بحث حال فلان یک بهش خواهی بسید اله همون تعریف اولینا موقفقت اونجا همین دو که با بعضی قاهل پای زینت، بعضی ها قاهل چیه؟ فای فسیح هست یعنی قبل شرطی در قمدیره میگه قبض تو عشق تا بعد میگه ازا قب تو زالک فحس بی زالک اگر اینو گرفتم دیگه بس یه چیز دیگه ای فحسبی ظالک حالا اگه خود فحسبی تکرار شده بود چی؟ بیتونه. کلمه ما مزافت فحسبی ظالک حازا حسب و کمن رجلن حازا حسب و کمن رجلن یعنی چی؟ یعنی کافی کمن رجلن دو تا مثال زده مثالهای دیگرش رو من که شما زده مثلا صورتی که مضافنل اگه حسب بشه نسی یا منسی یا باشه مثل این بگیم رعی تو زیدن رعی تو زیدن حسبن رعی تو زیدن حسبن حسبا می نویسید چه عرابی داره؟ منصوبه نسی یا منسی یاست و خالن باشه حسبا می نویسید یعنی رعی تو زیدن آفیان, آفیان. آفیان. این هم مالو صورت نسیگن و کلمه اول اگر یادتون باشه گفتم کلمه اول دو تا در عربی داریم یکی اولی که در مقابلش ثانی هست عدد هست آه. اون کلمه اول مورد انا اولم و انتسان و حوثا رسون. یک کلمه هم داریم اول به معنای اسبقه وصفیت داره این غیر مونسرف برخلاف اولی که مونسرف فقط وزن فرد داشت این نه غیر از وزن فرد هم ان... حالا کلمه اول ما اینجا به معنی اسفق و اول کما حکاه الفارسی یو من قوله هم بزا من اوله من اولو من اوله. سه را اراضی سه جور از آقای فارسی نگايهت اگر مثلا مضافون الیه شمسک شده بود میگفت ابد بزار من اول ال امره مضافون الیه ال امر مثلا دو من اول حاضر امر لای بود میشه 400 اگر من بگم ابد بزار من اوله یک دو صورت صورتی که نوی یا منویی چون اضافه شده و نفذن و محنن مضافون علیه هست نزا غیرمون صرف هم مجبور شده. آه. چون میدونید که غیرمون صرف اگه علیقان بگیره یا اضافه بشه کسی ها قبول انگار جایگار مضافون هست. نزا میگی من اوله. اگر بگم من لو مبنی ورزم شده. مزافنه لای افتاده لفظش در نیگه این معناش در نیگه هست اگر بگم من اوله نسیگن منسیگه هست مزافنه لایی ندارد نلفظن نمعنن کلمه ما چیه؟ خیر منصرف شده خاطره وزن فعل و وزنفل. من اوله حالا نگاه کنید حکایت کرده فارسین و به ذم الا نیت معنای مضاف و بنیت معنای مضاف نیت معنای مضاف میشه به ذم اون بغل مضاف الی بنوسین به ذم نیت معنای مضاف فقط ذم علامت بناست بود فقط معنا و بالجر و الجلو به جای اعظم است و الجل الا نیت و نیت لفظش با معناش این صورت نمیگم من میگاسم بهتر بود بگه و یا بگه و نسبه و نسبه درسته و نصب علا ترک نیت هی ترک نیت لفظش و معناش که میشه صورت نصیم منصوب شده منصوب شده نه منصوب شده. مشخصه و نصب علا ترک نیت هی یعنی نیت لفظهی و معنا. و منع علا که و منع سرفیهی للوز به بلوزه به خاطر وزن الفیل که داره و وزبه. وزن الفیل وزن چون اختصاصی نیست قبلش یکی از هروفه دینه هست مشکل حل کرده وزن که داره به من حق دو دون و بلجهاد کلمه دون ول جهات و و یکم جهتهای ششگانه بالا با این مقابل پشت راست چند عیزن عیزن تو شعر هم مقبول مطلقه یعنی آز عیزن و جملش, جملش جمله معترضه است یعنی رجعه الامر و جوان برگشت مطلب برگشتنید یعنی برگشتیم با سر جای افقال من با این کلمه مثل غیبست عیزن مثل رجوعن مفهوم و که جایه بیرشش هست یعنی رجع علام رو رجوعن. نه با مثال حالا یه دونه مثال مثلا اینطور بگیم جا قوم و اخوک خلفو جا قوم و اخوک خلفو او امامو مبنی برزن به نه آمدن قوم و حالی است و حالان که برادر تو چیه پشت سر اونها بود یا برادر تو جلوتر از اونها بود الان اگه خلفو میخونیم میگیم لفظن مبنی برزن محلن منصوب متعلق به یا آمل مقدر خبر اخوک به جمعه اخوکم هم اخوک خلفو حال است از برای اخوک حالا میتونیم اینو بگیم خلفو میتونیم بگیم چی؟ خلفه میتونیم بگیم خلفن و میتونیم بگیم خلفه هم چهار صورت میشه چکار کنی؟ کنیم؟ نه با مثال ازا انلم اومند ازا انا اومن حالا ببینیو این از کنون رس میشه ازا انا لم اومن مثل از از سما و این شنقت این احرام به نموشکین استجاره که پرجه رو انا نایفایل یه لم اومنه مقدره که لم اومن دوبام چگارش میکنه بعدش؟ میکنه. ازا اضافه میشه به فرن شرط فنسوی به جزای شرطی چیم توی نیست ازا انا لم اومن علیک زمانی که من از تو ایمان نباشم انا نای فایلی لم اومن علیک متعلق به لم اومن جارمشون متعلقه جمعهش مزاخن علیکه ازا وا وا وا آتفه لم یکم افر بجای لم اومن لقاوکا اسم لم یکون الا منورا الا الا استثناء استثناء مفرقه منورا متعلق به عامل مقدر خبر لم یکون یعنی لم یکون لقاوکا الا ثابتن موجودن منورا منورا ورا ورا یعنی پشت دیگه اینو دو جور قراحت کردن بعضی کردم من کردن او ورا او وقتی موقع میشه چی مبنی ور زم منبراء مضاف الی لفظ شده معنیش در نیت هست شده منبراء یعنی منبراء الحجاب این که تو آب خرید دا و تعلق داره. حالا دور که درست دوستم بینیم. پس قرائتی که داره اعلامه نو ورآو ورآو ورآوی اول مبنی بر زم شده. ورآو دوم تأکید لحی برای من. من برا ورآو ورآو. صورت چی شکفته؟ مبنی بر زم شده. که من در آمده ولی مبنی بر این رو روایت هم کردن من وراعه برا او، چون قافیه شعر بزن زم این همزه این هست اون موقع برای اول اضافه شده به وراعه دوم برای اول چون مزافره لعیش مذکوره چی شده مجرور شده صورت مذکوره وراعه دوم مزافره لعیش چی شده افتاده لفظش در نیتی معناش در نیتش شده مفی بر ورائه ورائه یعنی چی؟ پشت پشت میگن این نوع اضافه ها رو برای مدالقه میارن نیست مثل مثلا عبدالعابدین لا ازور او رو که یا لا ازور رو که اوزل آئزین یعنی همیشه همیشه مثل سلطان و سلطی. اضافه مملاب مبالغه پشت پشت از ورای ورای هجاب یعنی پشت پشت هجاب یعنی خیلی عمیق اون اذا ان لم اومن لم اومن فعل شرطش ولم یکون به جای اون جزای شرطم به مصرع بعدش شد ببینید بعدش مثلا فرض کن اذا ان لم اومن الیک ولم یکون لقاو که الا من ورای ورای مثلا حزن محزن عن دید که جزای شرط باشه که ناصبه اعراب هم باشه پس מלوراء برا او מלوراء و برا و حکل کسائی گفت حوایت کردی کسائی اینو نگاه کن یک نفر مهمانی رفته به جایی اون شخص برگشته بهش گفته افوقا تنام ام از سفلا افوقا تنامو ام اسفل او خب یه جای خاصی رو بهش نشون داده دیگه نه مثلا بهش نشون داده که میری بالا پشتون می‌خواد یا پشتون بالا میخوابی یا پایین منظورش بالا و پایین خاصی بوده ها لذا گفته افوق تنام و ام اسفل فوق یعنی چی این صورت کونه صورت نویان منوی باشه یعنی افوق سطح تنام و ام از فلسطه از به جای پروبن ام ام متصل است همزن برای تصور اومده تصور از زر تو اون تعییم کنه باون میخواد یا ام از فلسطه فوقم متعلق به تمام تمام خیلو باون ام از به جای پرده. به نسب ببینید اینجا نمیگه به فرد میگه چی؟ به نسب در هر دوتا فوقا از ای افوقه هازا هازست ام از قلقه هازست بالای این پشته همه یا پایینش لبز و معنا هر دو در نگه کلمه بعدی الوست کلمه بعدی کدومه الو به معنا الفوق الو به معنی فوق به معنا الفوق یعنی همین فوقه بالایی که دیجی به معنه یک عبارتی رو میگم چون لازمش داریم بنویسیم از آقای ابن شام میگه و تخالف و حافی امرین و و حافی امرین و مخالفت دارد الو فوق را در دو جهت یعنی الو درسته به معنای فوقه ولی دو تا بچه فرق با هم داره و تو و خفی امره یک انها لا تستعمل الا مجرورتا به من. انها لا تستعمل الا مجرورتا به من. الو استفاده نمیشه مگر مجروره به من ولی فوقو دیدیم بالا حرف و میتونه می باشه میتونه این یک و انها لا توستعمل و مضافتن. و انها لا توستعمل و مضافتن. و این الو هیچ وقت به شکل اضافه نیومده. یعنی مضافه نیمش مذکور باشه ولی فوق میتونه من فوق حاضر یا فوق حاضر که خودش والا عيب و خاص ان حالات استعملوا مضاف كذا قال جماعه تن انچنين گفتند ادعی از نهیگی یعنی اینجا من هم ابن عابد نبی یکی از این جماعتی که این دو تا شهر گذشته کی بوده آقای ابن عبدلله و هو حق. ابن نشان میگه هر شهرشونام چیه حق حرفی که زدن درسته و حوال هفت خود و ظاهرو و ظاهرو ذکر ابن مالکن نها اعداد حاضر الفاظ و ظاهر یاد کردن ابن مالک این علو رو در شماره کردن این در ردیف این الفاظ یعنی هلورم جزه قبل و بعد و جهات ست و دون و غیر و اینها بود و ظاهر و ذکر اپنه مالک لحافی اعداد ها زیر ظاهرش چیه؟ اینه انها یجوز و اضافت و ها ظاهرش اینه که اینم جایز باشه اضافش دیگه نه چون اینم در لدیف اونها بود انها یا جوز یا تجوز و اضافت وقت سر رحل جوهری یا بزارک جوهری صاحب کتاب صاحب ها به این مطلب که این اضافه میشه در ظاهر چگاه کرده تصریح کرد وقت سر رحل جوهری یا بزارک و قالم بعد این طور گفته یقالو عطای توهو من علت دار یقالو عطای توهو من علت دا. یعنی من فوقه تا عللن اضافه شده به چی؟ به علت تا من علت تا به کسر لام یا دوباره بگیم به جر لام وارد نمود با جر ما ها لام میشه چی؟ مجرد. ای من عالن ای من عال یعنی من فوقه بازم به جای من عالن اگر گفتم یعنی من فوقه این و مقتزا قولهی و مقتزا قولهی و مقتزای قول آقای ابن مالک بیت بعدی رو ببینید ابن مالک چی میگه و عربون نصبا گفته چی؟ و اعراب دادند قبل و آنچه که بعد از قبل هست رو به نصب یعنی علو هم جزء چیه؟ اوناییه که منصوب میشه و موقع قولهی و عربون نسوان از زمان نکرا قبلا و, و ما من بعدی قد نکرا مقتضای قول ابن مالک این اینه که انهای جواز انتصابها ها انهای جواز انتساب ها عل الزرفیه منصوبش کنیم بنابر چی ظرفیت مثل قبلا عللن بگیم منصوب بشه از ظرفیه او غیر ها یا ظرفیت یا غیر ظرف میگه و ما از اونو شی ان شیئا منال الا امرین موجودا و ما از اونو شی ان شیئا منال الا امرین موجودا ابن هشام میگه من فکر نمیکنم چیزی از این دوتایی که ابن مالک گفته در عربی وجود داشته باشه این دوتایی که گفت چیه یکی اینکه این را آورد در بین اسماء دیگه به کار بود یعنی کلمه ال هم میتونه بگی اضافه بشه و مضاف لایش مذکور باشه و بعد هم برگشت گفتش و عربو نصفم نصفم دادن قبل و ما من بعدی قبل و اون چیزی که بعدشه خب شامل الو هم هست پس الو میتونه مجرور به من هم پس دیگران دوتا تا شاهد کردن یکی اینکه الا باید مضاف و نهایش نباشد ابن مالک با این مخالفه چون ظاهره کلامش اینه که اینم مثل فوق و قبل و بعد و اینهاست وش تحت دوم دیگران اینه که این همیشه مذوره به من میاد ابن مالک با اینم مخالفه چرا چون گفته و عربون اصلا قبلا و ما بعد قبل. من بعدی میپاد پس بنابراین الو میتونه منصوب بشه وقتی میتونه منصوب بشه یعنی مجبور به من نیومده میگه هر دوتاش رو ابنه شام میگه من فکر نمی کنم مجرور بشه همچین چیزی صحیح حالا بخونی ببینید. کلمه الو اگر مزافون لایش معلوم باشه میشه مبنی برزن، اگر مزافون الهی مشخص نباشه قد شده باشه میشه مقرم حالا نگاه کنید به معنی الفو نه این مثال از اونایی که مضافلش معلومه میگه ولقد زدد تو علی که کل سنیت و عطای تو فوق و بنی کلیبن من علوم قافیش است من بزنه ولقد جواب قسمه سدد تو یعنی بستم لام لام توتیه قسم بعد سدد تو جواب قسم علیکه متعلق به سدد تو خیلو کل سنیت یعنی کل طریقت کل سبیل مفهول سدد تو میگه هر راهی رو من بر تو بستم سد کردم و عطای تو فوق بنی کلیبن و آمدم فوق ببینید الان اضافه شده و منظور است. اومدم فوقا متعلق است به عتایجو. عتایجو آمد به سوی صدا. فوق بنی کلیبن وارد شدم از بالای سر بنی کلیب. من علو من علو یعنی چی؟ یعنی از بالای سرشون میگه فوق بنی کلیبن من الو یعنی من اله بنی کلیب دیگه نزاخن اله چیه؟ به قرینه بنی کلیب قبل معلومه که بنی کلیبه بلندی مطلق نیست بلکه بلندی بالای سر بنی کلیب بلندیه که پایینش بنی کلیب هست من الو متعلق است به عزیز. شده مبنی بر این شعر رو که خوندیم و قد اغتدی و تیروفی و کناتها به منجردن غیدل عقابده حیکلی حال امروال غیثه مکررن، مفررن، مقبلن، مدبرن، معن که سختن سخرن حتی رو، میگه وقد اقتدی اقتدی یعنی اخرج و قدوطن خارج میشم صبح وقد اقتدی وابا وا به وا حالیت ودتیروفی و کناتها و حالا اینکه پرندگان در لانه هاشون هستن خارج میشم با چی؟ به منجردن متعلق از به اقتدی منجرد صفت فرسه یعنی به فرسه منجردن به اسبی کوتاهوی قید العوابد صفت دوم هایکلن صفت سوم اصلی کوتاهوی قید العوابد عوابد جمع عابده یعنی وحشی پیوان که فرار کرده فراری قید العوابده هایکلن صفت است برای مثل منجرد برای فرس مکرن مفرلن مقبلن مدبرن من همه صفات است مکرل و مفر سیغه مدالبه است بروز محن محن حال است از برای زماعیر این حال مکرل است مفرل است مقبل از مقبل است محن یعنی است همه این کالان میتونه در موقع حمله حمله میکنه کرار است در موقع فرار فرار میکنه در موقع رو آوردن رو میاره در موقع پشت کردن پشت میکنه در میگه محن کجلمود صفت بعدی است جلمود یعنی تخت سنگ کجلمود سخته مثل تخت سنگ یک صخره است این صفت سخت است که حتی حسیدومن علم مثل تخت سنگ یک سنگ یک صخره است که حتی او یعنی انزل او فرو انداخته است اون رو سیل از بالا حالا چون بالا از بالا, بالا،, بالا. بالای خاصی مورد نظرش نیست مثل یک تخت سنگی که از بالا ویلش کرده باشن به <تصفيق> حتی حسیل و من علن حتی او فیل و مفهور از سیل و فایلش من علن متعلق است به حسیل میبینین شده مورب و مجرور و باتن و فهمم این ذکر المسنف لها همون چیزی که گفتم میگه و فهمیده میشه از این که مسنلف این رو کرده در کنار قبل و بعد و غیر و اینها جواز و اضافت ها لفزن این که جایز از اضافه بشه چی؟ لفزن و به هی سر رحل جوهری و به همین که اضافه میشه لفزن تصریح کرده آقای جوهری که گفتیم گفته چی؟ عطای تو من علت دار و خالف و هو ابن ابو الربی ابن عبر الربی مخالفت کرده گفتم همچی چیزی نیست این مزاوفنه لیش نباید ذکر شده باشه و همیشه هم مظوره به میلیاد و عربون اصلا یه مقدار توضیح دادن میمونه برای جلسه